اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا على قومه من بعدهی من جند من السماء و ما کننا منزلین و بعد از او برقومش هیچ لشکری از آسمان فرو نفرستادیم و ما فرو فرستنده نبودیم إن كانت إلا واحدة فإذا هم خامدون بلکه کیفر آنها جز یک بانگ مرگ بار نبود پس ناگاه همه خامو شدند یا حسرة علی العباد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 ال یا ك هلكنا قابلهم م القورون أن هم إليم لا يرجعون آیا ندیدند که پیش از آنها چه بسیار ند را نابود کردیم که آنها هرگز به سوی ایشان باز نمیگردند.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 و زمین مرده برایشان نشانه به است که ما آن را زنده گردانیدیم و دانه ای که از آن می بیرون آوردیم و جعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب و فجرنا فيها من العیون و در آن باغهایی از مخلها و انگورها قرار دادیم و در آن چشمهای جاری ساختیم لیا من ثمره و ما تو افلا يشکرون. تا از میوه آن بخورند در حالی که دست آنان در تولید آنها هیچ دخالتی نداشته است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 و الشمس تجریل مستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم و نیز که به سوی قرارگاهش در حرکت است این تقدیر خداوند پیروز مند داناست والقمر القمر قدرناه منازل حتی عاد العرجون القدیم و برای ماه منزلگاههایی مقدر کرده این تا چون شاخی خوشک و کهنی خرما باز کردد لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ سَابِقُ النَّهَارِ فِي فَلَكِ خورشید را سزد که به ماه رسد و نشب بر روز پیشی میگیرد و هر یک در مدار خود شناورند. و آیت لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلك المشحون نشان ای دیگر برای آنان این است که فرزندانشان را بر کشتی پربار سوار کردیم و خالقنا لهم من مثله ما يركبون و مرکب های دیگری همانند آن برای آنها آفریدیم که سوار میشوند و این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 مگر اینکه رحمتی از سوی ما شامل حال آنها شود و تا زمان معینی از دنیا بهره بگیرند. و اذا قیل لهم اتقو ما بین ایدیکم وما خلفكم لعلكم ترحمون و هنگامی که به آنها گفته شود از آنچه پیش روی شماست و از آنچه پشت سر شماست بترسید شاید مورد رحمت قرار گیرید اعتراض میکنند و ما من آیهی من آیات ربهم الا كانوا عنها محرضين. و هیچ آیه ای از آیات پروردگارشان برای آنها نیاید مگر آنان از آن روی بگردانند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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ فميجو يانت؟ أجر راس ميجو إيد؟ إن وقت أزاب كي خاهت بود؟ ما ينظرون إلا طيحته واحدة تأخذهم وهم يحصمون. آنها جز انتظار یک بانگ مرگبار نمیکشند کشند که آنها را فرو می‌گیرد در حالی که سرگرم جدال و دشمنی هستند. لا یستقیعون ولا الى اهلهم یرجعون پس در آن وقت نمی توانند وصیتی کنند و به سوی خانواده خود بازگردند و نفی خفی الصور فا هم من الاجدات الی ربهم ینسلون و چون بار دیگر در سور دمیده شود پس ناگهان آنها از قبرها بیرون آیند شتابان به سوی پروردگارشان می روند قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون گویند وای برما چه کسی ما را از خوابگاهمان برانگیخت به آنها گفته شود این همان است که خداوند رحمان وعده داده بود و پیانبران خدا راست گفتند این كانت الا صیحة واحدة فذا هم جمیع لدینامحرون آن جز یک بانگ مرگبار نخواهد بود پس ناگهان همه نزد ما جمع و اهزار میشوند فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پس امروز به هیچ کس ذره‌ای ستم نخواهد شد و جز به آنچه عمل میکردید جزا داده نمیشوید این اصحاب الجنة اليوم فی شغل بی گمان اهل بهشت امروز در کاری لذت بخش مشغولند و شادمان هستند هم و ازواج هم فی ظلال على آنها و همسرانشان در سایه هایی بر تخت خاتکی اند لهم فیها فاکهت و لهم ما يدعون برای آنها در آن بهشت انواع میوه است و هرچی که بخواهند برایشان فراهم است سلام من رب به آنها گفته می شود سلام بر شما باد، این سخنی است از جانب پروردگار مهربان و انتاز اليوم ايها المجرمون اي امروز از نیکان جدا شوید الم اعهد اليکم یا بنی ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبین ای فرزندان آدم آیا با شما پیمان نبستم که شیطان را نپرستید که او برای شما دشمن آشکار است. و آنی عبودونی، هذا مستقیم. و اینکه مرا به این راه مستقیم است. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون و بهراستی او گروه زیادی از شما را گمراه ساخت آیا انگیشه نکردید هذه جهنم التی كنتم توعدون این همان جهنمی است که به شما وعده می شد اصل امروز به سزای کفری که ورزیید اید به آن درایید الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتَكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بما كَانُوا يَكْسِبُونَ امروز بردهانهایشان مهر مینهیم و دستهایشان با ما سخن میگویند و پاهایشان به آنچه چه میکردند گواهی میدهند وَلَوْ شَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّا يُبَصِرُونَ و اگر بخواهیم چشمانشان را مه و نابود می کنیم پس شتابان آهنگ راه می کنند اما چگونه می ببینند ولو نشاء لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فما استطاعوا مضیا ولا یرجعون و اگر بخواهیم آنها را در جایگاهشان مسخ و میخكوب میکنیم پس نتوانند که به پیش قدم بردارند و نه به عقب بازگردند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 و ما علمناه الشعر و ما له بغله، هو إلا ذکر و قرآن مبین. ما هرگز شعر به اون یا ایم و شایسته او نیست. این کتاب چیزی جز اندر و قرآنی روشنگر نیست.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 و ذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها منها يأكلون و آنها را برایشان رام کریم، پس بر بعضی سوار میشوند و از گوشت بعضی میخورند خورند و لهم فیها منافع و مشارب افلا و برای آنها های دیگر و نوشیدنی ها در آن حیوانات است، آیا سپاس نمی گویند؟ و من دون الله آلهتا لعلهم ینفرون و آنها غیرت خدا معبودانی برای خود برگزیدند، به این امید شاید کیاری شوند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 اولم یرال الانسان انا خلقناه من نطفت فا هو خصیم مبین آیا انسان نگیده است که ما او را از نطفه ای ایم پس او ستیز جوی آشکار شده است و بر بلن مثل او و نتی خلق قالماییوشیل غوا مه رامی و برای ما ئلی زد و آفرینش خود را فراموش کرد گفت: چه کسی این استخوانها را دوباره زنده می کند در حالی که پوسیده استقلیوشینللی.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 الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا نتم منهتوقدون همان كسی كه از درخت سبز برای شما آتش پدید آورد پس آنگاه شما از آن آتش میافروزید خلق على مثلهم بلا وهو الخلاق آیا کسی که آسمانها و زمین را آفریده است نمیتواند همانند آنها را بیافریند؟ آری می تواند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 بسم الله الرحمن الرحیم و صفا سوگند به فرشتگان صف کشیده فالزاجرات زجرا پس سوگند به فرشتگان بازدارنده فالتالیات ذکرا و به کنندگان ذکر اِنَّ لَوَاحِدَ که همانا معبود شما یکیست؟ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقَ پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آنهاست و پروردگار مشقها انا السماء الدنيا بیگمان ما آسمان دنیا را به زیور ستارگان بیاراستیم وحفظا من كل شیطان مارد و از هر شیطان سرکشی حفظ کردیم لا یستمعون إِلَى الملئ الْأَعْلَى ویقذفون من كل جانب تا به سخنان عالم بالا گوش فرا ندهند و از هر سو به وسیله شهاب زده و رانده میشوند دحورا ولهم عذاب واصب آنها به سختی عقب رانده میشوند و برای آنها عذاب دائمی است الا من خطف الخطفه فاسبعهو شهاب ساقب مگر کسی که ناگهان چیزی را بروباید پس شهابی درخشان او را دنبال میکند فاستفيهم اهم اشد خلقا ام من قلقنا اننا خلقناهم من طين لازب پس ای پیامبر از آنها بپرس که آیا آفرینش آنها سخت است یا آفرینش آنچه چه ما آفریدیم ما آنها را از گل چسبنده ای آفریدیم بل عجبت و بلکه تو از انکار آنها در شگفت شدی و آنها مسخره می کنند و اذا لا و هنگامی که پند داده شوند پند نمی پذیرند و اذا رأم آیتی به هنگامی که معجزه ببینند آن را مسخره می کنند و قالوا إن هذا إلا سحر مبين و می گویند این جز جادویی آشکار نیست ای اذا متنا و كنا ترابا وعظاما ا اننا لمبعوث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 بگو آری و شما خار و زبون زنده می شوید هی هِيَ زَجَرَتٌ فاذا فا هم يَنظُرُونَ پس آن تنها یک بانگ سه است. ناگهان آنها از قبرها بیرون می آیند و می نگرند و قالوا یا ویلنا هادا یوم الدین و گویند بای برما این همان روز جزاست هادا یوم الفصل لذی کنتم بهی تکذبون آری این همان روز دابری است که شما آن را تقضیب می کردید احشرون لذین و ازواجهم و ما کانو یعبدون به فرشتگان فرمان داده می شود گرد آورید کسانی را ستم کردند و همپایگان و همراهانشان و آنچه را می پرستیدند به جای خدا من دون الله فهدوهم الى صراط الجحیم پس همه آنها را به راه دوزخ هدایت کنید وقفوهم این هم مسئولون و آنها را نگاه دارید که یقینا باز خواهند شد ما لكم لا شما را چه شده است که یک دیگر را یاری نمی بل مستسلمون؟ بلکه آنها امروز همه تسلیم و فرمانبردار هستند. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون آنها سؤال کنان رو به یكدیگر کنند قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمین به سردمداران گویند راستی که شما برای گمراه کردن ما از راه خیر خواهی به نزد ما می آمدید بل لم سردم سردمداران در پاسخ گویند بلکه شما خودتان مؤمن نبودید تقصیر ما چیست و ما کان لنا علیکم من بل كنتم قوم طاغین و ما هیچ تسلطی بر شما نداشتیم بلکه شما خود گروهی سرکش بودید فحق علینا قول ربنا اینا پس فرمان پروردگار من بر ما ثابت شد البته ما چشنده عذاب خواهیم بود فا کننا پس شما را گمراه کردیم بیگمان ما نیز خود گمراه بودیم فا پس مسلمان در آن روز همه آنها در عذاب شریک خواهند بود این ما نفعل بیشک ما با مجرمان اینگونه رفتار میکنیم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 چون نیست، بلکه پیام بر خدا حق را آورد و پیام بران این را تصدیق کرد. اینکم لذائق العذاب الالیم مسلمان شما عذاب دردناک را خواهید چشید. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون و جز به آنچه می کردید کی ای فرداده نمی شوید الا عباد الله المخلصین و بندگان مخلص خدا اولائی لهم رزق معلوم که آنها رزخ و روزی معین دارند ثواکی و هم انواع میوه ها و آنان گرامی داشتگانند فی جنات نعیم در باغهایی پر نعمت علی سروریم متقابلین بر تخت هارو به روی یکدیگر نشسته اند یطاف و عليهم بیکشیمعیم گردا گردشان جامی از شراب روان میگردانند. بیضاء لشاربین شرابی سفید و لذت بخش برای نوشندگان است لا فیها غول ولا هم عنها نه ندر آن طبح و فساد است و نه آنها از آن شراب مست شوند و, و نزدشان همسرانی سیه چشم دید فروهشده که تنها به شوهران خود نظر دارند خواهند بود که نبیض مکنون گویی آنها بیزه های مرغ در پرده پوشیده اند فاقبل بعضهم علی بعض سائلون پس آنها سوال کنان رو به یک دیگر کنند قال قائل منهم اینی کان لی قرین یکی از آنها گوید، به راستی من در دنیا همنشینی داشتم. یقول لمن که پیوسته می گفت، آیا باقی تو از باور کنندگان هستی؟ ایزا متنا و کنا ترابا و عظاما آیا وقتی که مردیم و خاک با استخانهای پوسیده شدیم زنده می و کیفرمان می دهند قال هل انتم او به دوستان بهشتی گوید آیا شما می توانید به دوزخیان بنگرید و از او خبری بگیرید فطلع فراهو فی پس چشم برگرداند و نگریست ناگاه او را در میان دو زخید. قالت الله این گوید به خدا سوگند نزدیک بود که مرا به حلاکت افکنی. ولولا نعمت ربی تو من و اگر نعمت پروردگارم نبود من نیز از احزار شدگان دوزخ بودم.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 و ما هرگز عذاب نخواهیم شد این نهذا له الفوز العظیم بیگمان این همان کامیابی بزرگ است لِمِثْل هَذا فَلْيَعْمَلِ العاملون. وری عمل کنندگان باید برای چنین پاداشی عمل کنند اذالك خير نزل ام شجره الزقوم آیا برای پذیرایی این نعمتهای بهشتی بهتر از درخت زقوم؟ ان جعلناها فتنه للظالمین همانا ما آن را ابتلاعی برای ستمکاران قرار دادیم، اینها شجره تخرج فی اصل الجحیم، به راستی آن درختی است که از قعر جهنم می روید، طلعها که رؤوس الشیاطین، ذکو اش همانند سرهای شیاطین است فاینهم لااکلون منها فمالئون منها البطون پس آنها از آن میخورند و شکم را از آن پر می کنند ثم ان لهم عليها لشوبا من آنگاه بر روی آن آمیزهای از آب گرم و سوزان دارند ثم انمرجعهم الی الجحیم سپس بازگشت آنها به سوی جهنم است انهم الفوا باهم مان آنها نیاکان خود را گمراه یافتند فهم علی آثارهم یهرعون پس اینها در دنبال آنان شتابان میروند ولقد ضل قبلهم اكثر الاولین و به راستی پیش از آنها بیشتر پیشینیان گمراه شدند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 اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ مگر بندگان مخلص خدا ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون و یقینا نوح ما را نداداد پس ما چه خوب اجابت کننده ای هستیم.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 و عليه علیه فی الاخرین برای او در میان بعد نام نیک بر جای نهادیم سلام علی نوحی فی العالمین در میان جهانیان سلام بر نوح باد اینا کذالک نجزی بیگمان ما این گونه نیکوکاران را پاداش میدهیم. دهیم اینهو من عبادنا المؤمنین یقینا او از بندگان مؤمن ما بود ثم اغرقن الاخرین آنگاه دیگران را غرق کردیم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 از قال لعبیه و ماذا تعبدون چون به پدر و قومش گفت چه چیزی را می پرستید اعفکن دون الله تریدون آیا به جای خدا معبودهای دروغین می خواهید فما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 و با شما به جشن نمی آیم فتولو عنه مدبرین آنها پشت کنان از او دور شدند و رفتند فراغ الی فقال الا آنگاه پنهانی نزد معبودانشان رفت و گفت آیا چیزی نمی خورید؟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 فأقبلوا إليه يدفون. پس آنها شتابان به سوی او روی آوردند قال تعبدون ما تنحتون ابراهیم گفت آیا چیزی را میپرستید که خود تراشیدید والله خلقكم وما تعملون در حالی که خداوند شما را و آنچه را که انجام می دهید و میسازید آفریده است قال بنو له بنیانا فالقوه في الجحيم گفتند بنای بلندی برایش بسازید و او را در خرمن آتش بیفکنید فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين پس آنها در حق او نیرنگ و مکر ورویدند و ما آنها را مغلوب و پس ساختیم و آتش به فرمان خدا سرد شد وقال قال اني ذاهب الى ربي سيهديني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 فلما اسلم پس چون هر دو تسلیم شدند و ابراهیم او را به پیشانی بر افکند و انا دیناهو ابراهیم و او را ندادادیم ای ابراهیم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنین یقینا خواب خیش را تحقق بخشیدی بدون شک ما این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم این ها با لهو مسلما این خواب آزمایشی آشکار بود و او به عظیم و او را به زبح بزرگی فدا دادیم و ترکنا علیه فی الاخرین و برای او در میان امت‌های بعد نامنیک بر جای نهادیم سلام علی ابراهیم. سلام بر ابراهیم کذالک نجز المحسنین این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم من عبادنا المؤمنین بیگمان او از بندگان مؤمن ما بود وبشرناه بشرناه بی مِنَ من الصالحین و او تولد اسحاق از شایستگان بشارت دادیم و بارکنا و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 و برای آنان در میان های بعد نامنیک باقی گذاشتیم. سلامون علی موسی و هارون سلام بر موسی و هارون اینا کذالک نجزی المحسنین بیگمان ما این گونه نیکوکاران را پاداش میدهیم. ان هما من عبادنا المؤمنين یقینا آن دو از بندگان مؤمن ما بودند وَإِنَّ ان الیاس من المرسلین فبی گمان الیاس از رسولان ما بود اذ قال <لقومه> چون به چون گفت آیا پرهیزگاری نمی کنید اسدعون بعل و تدرون احسن الخالقین. آیا بت بل را می خانید و بهترین آفرینندگان را رها می کنید الله رَبكم ورب ابائكم الأولین الله که پروردگار شما و پروردگار نیاکان نخستین شماست تكذبو فانهم لمخضرون از آنها او را تکذیب کردند و یقیناً همه آنان به جهنم اهزار خواهند شد إلا عباد الله المخلصين مگر بندگان مخلص خدا و ترکنا عليه في الاخرين و برای او در میان امت بعد نام نیک باقی گذاشتیم سلام, سلام بر آل یاسین ایننا كذلك نجزی المحسنين ما این گونه را پاداش میدهیم. اینهو من عبادنا المؤمنین بیگمان او از بندگان مؤمن ما بود. و این لوط من المرسلین و یقینا لوت از رسولان ما بود. از نجیناه و او اجمعین هنگامی که او و خانواده اش را همگی نجات دادیم. الا عجوزا فی الغابرین مگر پیرزنی که از باقی ماندگان بود ثم مدم مرن سپس دیگران را هلات کردیم و اینکم لتمرون علیهم مصبحین و شما پیوسته صبحگاهان بر بیران های شهر شهرهای آنان میگذرید وباللیل افلا تعقلون و همچنین شامگاهان آیا نمی اندیشید و این یونس لمن المرسلین و یقینا یونس از رسولان ما بود از أبقا إلى الفلك المشحون هنگامی به کشتی پر از مسافر و بار گریخت فساهم فکان من المدحضین پس اهل کشتی قرعه زدند پس قرعه به نام او افتاد و مغلوب شد فالتقمه الحوت و هو آنگاه ماهی عظیمی او را بلعید در حالی که او سزاوار نکوهش بود. فلولا انهو کان من المسبحین پس اگر او از تسبیح کنندگان نبود للبت فی بطنهی الى یوم یبعثون یقینا تا روزی که مردم برانگیخته میشوند، در شکمش باقی میماند. فنبدناه او و هو تقیم. پس او را به سرزمین خشک و خالی از گیاه افکندیم، در حالی که او بیمار بود. و انبتنا عليه شجره می و درخت کدوئی بر فراز او رویاندیم تا زیر سایه آن آرام بگیرد و ارسلناه الى الف او یزیدون و او را به سوی یکصد هزار نفر از قومش یا بیشتر فرستادیم فآمنوا فمتعناهم الاحیم. پس آنها ایمان آوردند بنابراین تا مدتی آنان را از نعمتهای های زندگی بهره ساختیم ساختیم سستهم الربك البنات ولهم البنون پس ای پیامبر از آنان بپرس آیا دختران از آن پروردگارت است و پسران از آن آنهاست؟ ام خلقن الملائکت ایناسا شاهدون آیا ما فرشتگان را مؤنس آفریدیم و آنها حاضر بودند؟ علا این من آگاه باش، بیگمان آنها از روی تهمت و دروگویشان است که میگویند من فکییم لاقول و این خداوند فرزندی زاده است و یقینا آنها دروغگو هستند. افطف البنات علی البنین آیا خدا دختران را بر پسران ترجیح داد؟ ما لکم کیف تحکمون؟ شما را چه شده است؟ چگونه حکم می کنید؟ افلا تذکرون آیا نمی اندیشید؟ ام سلطان مبین یا شما بر ادعای خود دلیل روشنی دارید؟ فأتو به کتابکم این کنتم صادقین پس اگر راست گویید کتابتان را بیاورید و بينه بینه و بین نسبا ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون و آنها میان او و جنیان نسب و خویشاوندی قرار دادند در حالی که جنیان به خوبی میدانند که آنان احزار خواهند شد سبحان الله عما یصفون خداوند منزه هست از آنچه توصیف می کنند اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ مگر بندگان مخلص خدا فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ پس شما مشرکان و آنچه می‌پرستید ما انتم علیه بفاتنین هرگز نمی‌توانید بر پرستش آن بت‌ها کسی را گمراه کنید الا من هو صال الجحیم مگر کسی که راهی آتش جهنم باشد و ما منا إلا له مقام معلوم فرشتگان گفتند و هیچ کس از ما نیست مگر آن که جایگاه و مقام معلومی دارد و انا لنحن الصاف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 این لهم المنصورون که هر آین آنها یاری شدگانند و این جندنا لهم الغالبون و بیگمان لشکر ما پیروزند فتول عنهم حتی حین پس ای پیامبر تا مدتی از آنها روی بگردان و با آنها را ببین پس آنها نیز نتیجه کردار خود را به زودی خواهند دید افب عذابنا آیا آنها برای دیدن عذاب ما شتاب دارند؟ فَإِذَا فا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ طَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ پس چون عذاب بر آستانی خانههایشان فرود فرو هشدار یافتگان چه صبح گاه بدی خواهند داشت وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَدَّى و تا مدتی از آنها روی بگردان و ابصر فسوف یبصرون بانها را ببین پس آنها نیز به زودی خواهند دید سبحان ربی رب ربی عما یصفون پاک و منظه است پروردگار تو پروردگار عزت از آنچه مشرکان توصیف می کنند. و سلام على المصلين و السلام بالرسولان والحمد لله رب العالمين و سپاس و ستایش مخصوص خداوندیس یست که پروردگار جهانیان است بسم الله الرحمن الرحیم صاد و القرآن صاد سوگند به قرآنی که دارای پند و اندرز است بل الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ بلکه کسانی که کافر شدند در سرکشی و اختلافند کم اهلکنا من قبلهم من قرن فنادن ولا تحين چه بسیار نزلهایی را که پیش از آنها خلاک کردیم پس هنگام نزول عذاب فریاد می زدند. اما آن زمان وقت نجات نبود و عجبو ان جاءهم منذر منهم و قال الكافرون هذا ساحر كذاب و آنها به شگفت آمدند که پیام هشدار هشدار دهنده ای از میان خودشان به سویشان آمده است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 بیگمان این دعوت چیزی است خواسته شده که شما را گمراه کنند ما به این هذا ما هرگز این چونین سخنی در آینه با پسین شنیده این، این جز دروغ چیزی نیست. اُنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكر بل لم ما عذاب آیا از میان همه ما قرآن بر او نازل شده است در حقیقت چنین نیست که آنها میگویند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 اَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ یا فرمان آسمان آسمانها و زمین به آنچه میان آندوست از آن آنهاست پس اگر چونین است با ریسمان به هر وسیل ایدی گر به آسمان بالا روند جند ما هنالک مهزوم من الاحزاب این لشکر شکست خوردئی از احزاب هستند کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و فرعون ذو الأوتاد. پیش از انها قوم نوح و آد و فرعون صاحب میخها و سپاه نیز پیام بران ما را تگذیب کردند و, و, لوط و, و نیز سمود و قوم لوت و اصحاب الایکه و نیز سمود و قوم لوت و اصحاب ایکه اینها احزاب و گروههایی بودند که پیام بران را تقزید کردند این کلون الا کذب فحق عقاب. هر یک از اینها بودند که پیام بران را تقزید کردند پس عقوبت من تحقق یافت و ما ایلا صیحة واحدة ما لها من فواق و اینها جزبانگی صحناک را انتظار نمیکشند که هیچ باز بازگشتی ندارد و قالو ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم و آنها گفتند پروردگارا بحری ما را از عذاب پیش از فرار روز حساب به ما بده اصبر على ما یقولون واذكر اذکر عبدنا داود ذالعیب اینهو اواب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 که شامگاهان و صبحگاهان با او تسبیح میگفتند و طیر له و پرندگان را نیز مسخر او کردیم که گرد می آمدند همه اینها فرمانبردار و بازگشت کننده به سوی او بودند و شددنا ملکه و آتیناه الحکمت و الخطاب و فرمان او را استوار کردیم و به او حکمت و سخنان فسیح اتا کردیم و هل اتاک نبع الخصم اذ تسور المحراب و آیا خبر شاکیان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 خصمان بغا بعضنا على بعض فحکم بيننا بالحق ولا تشطط وحدنا الى سواء الصراط چون بر داود بارد شدند پس او از آنها وحشت کرد آنها گفتند نترس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 فقال اکفل نیها و عزنی فی الخطاب بیگمان این برادر من است او 99 میش دارد و من یک میش دارم پس او میگوید آن یک میش را به من واگذار و در سخن بر من غلبه کرده است قال لقد ظلمک بسؤال نعجتی که الان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 وظن داود انما فتنهه فاستغفر ربه وخور راكعا وانا داود گفت به راستی او با درخواست یک نیشه تو که آن را به میشهایش هایش بر تو ستم کرده از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 فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفا وحسن مآب پس ما او را بخشیدیم و بیگمان برای او نزد ما قرد و مقامی بالا و بازگشت نیکوست يا داود انا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى, ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا وم الحساب ای داوود ما تو را در زمین خلیف قرار دادیم پس به حق در میان مردم داوری كن و از هوای نفس پیروی نكن که تو را از راه خدا گمراه میکند بیگمان کسانی که از راه خدا گمراه میشوند به خاطر آنکه روز حساب را فراموش کردند عذاب شدیدی شدیدی در پیش دارند. وما ما خلقن السماء والارض و ما بینهما باقلا ذالک ظنن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار ما آسمان و زمین و آنچه میان آنهاست بیهود نیافرید این این گمان است که کافر شدند پس وای بر کسانی که کافر شدند از آتش دوزخ ام نجعل الذين و وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار آیا کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند مانند مفسدان در زمین قرار میدهیم؟ آیا پرهیزگاران را مانند بدکاران قرار می دهیم؟ کتاب انزلناه ایلک مبارک لی الدبر آیاتهی و کتابیست پربرکت که آن را بر تو نازل کردیم تا در آیاتش تدبر کنند و خیردمندان پند گیرند وا وهبنا لداود وسلیمان نعم العبد انه اواب و ما سليمان را به داود عطا کردیم چه بنده خوبی بیگمان او بسیار رجوع کننده بود از عرض علیه بالعشی صافنات الجیاد بیاد بیاور چون اصر گاهان اسبان چاب و که تیز رو بر او عرض شد فقال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 فطفق مس كم و والاعماق گفت آن اسبان را نزد من بازگردانید سپس به ساقها و گردنهای آنها دست کشید و نوازش کرد ولقد لقد فتمنا سلیمان و القینا على جسدا ثم اناب و به ما سلیمان را آزمودیم و بر تخت او جسدی افکندیم سپس او رو به درگاه خداوند آورد و توبه کرد قال رب ارزقني واهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب قلت پروردگارا مرا ببخش و به من فرمانروایی عطا فرما که پس از من کسی را سزاوار نباشد و گمان تو بخشاینده ای له الريح تجري بمره رخا ان حيث پس ما باد را برای او مسخر کردیم تا به فرمانش به نرمی حرکت کند هر کجا می خواست برود و الشیاطین کل بنائی و غواص و نیز دیوان را حربنا و غواصی از آنها برای او مسخر کردین و آخرین مطرنین فی الاسفاد و گروه دیگری از دیوان را که همه در قل و زنجیر بودند برایش مسخر کردیم هذا عفاؤنا فمن او امسک بغیر حساب این عطای ماست پس به هر کس ببخش و یا نگه دار. حسابی بر تو نیست وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنًا مَّآبًا طبیب برای او نزد ما قرب با و مقامی بالا و با بازگشت نیکوست و اذكر عبدنا أيوب ربه ان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 و له اهله و مثلهم معهم رحمتا مننا و ذکرال اولی الالباب و خانواد اش و همانند آنان همراهشان را به او بخشیدیم چه رحمتی از سوی ما اندرزی برای خردمندان باشد وخذ بیدك ضرثا فضرب به ولا تحنس إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب و به او فرمان دادیم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 به ای پیامبر به یادآور بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را صاحبان دستهای توانمند و چشمهای بینا انا اخلصناهم بخالصة ذكر الدار ما آنها را با خصلت ای که آن یاد سرای آخرت بود خالص گرداندیم و انهم عن دنا المصطفین و یقیناً آنها نزد ما از برگزیدگان نیکان بودند الكفل و اذکر اسماعیل و یسع و من الاخیار و آور اسماعیل و یسع و را که همیجی از نیکان بودند ها ذا ذکر للمتقین لحسن مآب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 متکئین فیها یدعون فیها بفاکهت کثیرت و در آنجا تکیه زده اند و در آن میوه فراوان و نوشیدنی را میطلبند و عندهم قاصرات الطرف اتراب و آنان همسرانی فروهشت چشم و همسال است ما این است چیزهایی که برای روز حساب به شما بعد داده می شود این هادا ما له من نفاد. بیگمان این روزی ماست که آن را هیچ پایانی نیست و این, این پاداش پرهیزگاران است و بیگمان برای سرکشان بدترین بازگشت هاست جهنم یفلونها جهنم که در آن وارد می شوند پس چه بد آرامگاهی است. این عذاب آب جوشان و چرک و خونابه است که باید آن را بچشند و آخر من ازواج و کیفرهای دیگر همانند آن به انواع گوناگون دارند هذا فوج مقتحمون معكم لا مرحبا بهم انهم النار به سرداران آنها گفته می شود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 حیروان گویند بلکه شما را خوش آمد مباد که این عذاب را پیشا پیش شما برای ما فراهم کردی اید پس چه بد است قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا فی النار سپس گویند پروردگارا هرکس که این عذاب را پیش آپیش برای ما فراهم کرده است پس عذابی دوچندان در آتش برو بیفزا. و وقالو ما لنا لا نران جالا کننا و گویند ما را چه شده است مردمانی را که ما آنها را اشرار بی در جهنم نمیبینیم اتخذناهم سخریًا عنهم الابطار. آیا آنها را به مسخره گرفتیم یا اینکه از نظرها دور مانده‌اند إن ذلك لحق تخاصم أهل النار بیگمان این مخاسمه و گفتگوی دوزخیان حق به واقعیت است قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار ای پیامبر بگو من تنها یک هشدار دهنده ام به هیچ معبودی به حق جز خداوند یک تای یک قهار نیست. رب السماوات والارض وما بينهما العزيز پربردگار و زمین و آنچه میان آن دو است آن پیروزمند آمرزنده قل هو نبأ عظیم ای پیامبر بگو این خبری بزرگ است انتم عنه معرضون که شما از آن روی گردانید ما کان لی من علم بالملائئ الاعلاء اذ من از ساکنان عالم بالا چون درباره آفرینش آدم با یکدیگر جدال میکردند خبری ندارم. ایوحا الی الا انما آن نذیر مبین به من واه نمیشود. مگر این که من هشدار دهنده ای آشکار هستم اذ قال ربك للملائکت اینی خالق بشرا من قیم و به یاد آور هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت بی تردید من بشری را از گل می آفرینم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 پس فرشتگان همگی یک بار چه سجده کردند اِلَّا اِبْلِیسَ استَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ جز ابلیس که تکبر ورزید و از کافران بود قَالَ يَا اِبْلِیسُ مَا منعك كَأَن تَسْجُدَ لِمَا خلقت بِيَدَيْنَ از ام کنت من خداوند فرمود ای ابلیس چه چیز مانع تو شد از آن که برای آنچه من با دو دست خود آفرید ام کنی آیا تکبر ورزیدی یا از بلند پایگان هستی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 پس از اینجا بیرون شد که تو رانده شدی. و این علیک لعنتی الى یوم الدین و همانا لعنت من تا روز قیامت بر تو خواهد بود. قال رب فانظرنی الى يوم يبعثون. ابلیس گفت پروردگارا پس مرا تا روزی که دوباره برانگیخته میشوند مخلد. قال این من المنظرین خداوند فرمود همانات تو از مهلت یافتگانی تا آن روز و زمان معین. قال فبعزتك لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ابلیس گفت پس به عزتت سوگند که همه آنها را گمراه خواهم کرد الا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ مگر بندگان مخلص تو را از میان آنها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 إن هو إلا ذكر این قرآن جز پنز برای جهانیان نیست ول تعلمن نبأه بعد حن و قطعاً خبر صدق آن را بعد از مدتی خواهید دانست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 اگر خداوند می‌خواست فرزندی بگیرد مسلما از میان آنچه چه می‌آفریند چیزی را که می‌خواست برمیگزید. او پاک و منزه است او خداوند یکتای قهار است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 یخلقكم فی بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات سلاس ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون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 وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُوا وَاثِرَةً وَاثِرَةً ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اگر ناسپاسی کنید، پس بدانید که خداوند از شما بی نیاز است و هرگز ناسپاسی را برای بندگانش نمی پسندد. و اگر شکر او را به جای آورید، آن را برای شما می پسندد. و هیچ کس بار گناه دیگری را بردوش نمی کشد پس باز گشتتان به سوی پروردگارتان است آنگاه شما را به آنچه انجام میدادید آگاه می کند. یقینا او به راز دلها آگاه است و اذا مثل انسان ضر دعا ربه منیبا این دعا ربه منيبا إليه ثم اذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله ولتمتع بكفرك قلیلا انك من اصحاب النار به هنگامی که به انسان رنج و زیانی برسد پروردگارش را می‌خواند و به سوی او باز میگردد. پس هنگامی که نعمتی از سوی خود به او بخشید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 اَمَّنْ هُوَ طَانِتُمْ آنَاءَ اللَّيْنِ <سؤال> سَاجِدًا وَطَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ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 تنها خردمندان پند می‌پذیرند قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه وأرض الله واسعه انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب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 ذلك هو الخسران پس شما را که میخواهید به جای او پرستش کنید، بگو بیگمان زیان واقعی کسانیان که خود و خاندانشان را در روز قیامت از دست داده اند، آگاه باشید، این همان زیان آشکار است. لهم ثوقهم غلال من النار ومن تحتهم غلال ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون برای آنها از بالای سرشان سایبان‌هایی از آتش و در زیر پایشان نیز سایبان‌هایی چیزی است که خداوند با آن بندگانش را می‌ترساند ای بندگان من از من بترسید و الذين اجتناب الطاغوت ان يعبدوها وانا الى الله لهم البشرا فبشر عباد و کسانی که از طاغوت اجتناب کردهند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 لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرفهم من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعده الله لا يخلف الله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 آیا ندیدی که خداوند از آسمان آبی را نازل کرد پس آن را به صورت هایی در زمین به جریان درآورد سپس با آن کشت و زرعی که رنگ های گوناگون دارد بیرون میآورد. آنگاه خوشک می شود و آن را زرد میبینی سپس آن را در هم می شکند بیگمان در این امر پندی برای خردمندان است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 الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله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 که از شنیدن آن پوست کسانی که از پروردگارشان میترسند، بلرزمی بلرز می افتد آنگاه پوستهایشان و دلهایشان با یاد خدا نر میشود و آرام میگیرد. این هدایت خداست که هر کس را بخواهد با آن هدایت میکند. و هر کس را که گمراه سازد پس برای او هیچ هدایت کننده ای نخواهد بود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 و به ستمکاران گفته می شود بچشید کیفر را که به دست می آورید الذين من قبلهم العذاب من حيث کسانی که پیش از آنها بودند نیز آیات ما را تکذیب کردند،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 قرآن عربی غیر ذیع وجل علهم یتقون قرآن عربی به هیچ انحراف شاید آنان تقوا پیشه کنند براب الله مثلا رجلا فیه شرکاء متشاکسون و سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمدلله بل لا یعلمون خداوند مردی مملوک را که در بردگی او شریکانی است که پیوسته با هم اختلاف دارند و مردی مملوک که تنها تسلیم یک شخص است آیا این دو در وضع یکسانند حمد و ستایش مخصوص خداوند است بلکه بیشتر آنها نمی دانند این نکمیت و اینه هم میت ای پیامبر قژ آن تو خواهی مرد و آنها نیز خواهند مرد ثم انکم یوملقیامه عند تختصمون سپس بیگمان شما روز قیامت نزد پروردگارتان مخاسمه و جدال می‌کنید